اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین مالکیت فکری جلسه پانزدهم بعد از اینکه بیان شد که اسباب ایجاد و انتقال ملکیت به حسب معروف و مشهور چند تا هستند و گفته شد که در باب مالکیت فکسی فقط بحث از اسباب ایجاد ملکیت می شود نه اسباب انتقال ملکیت زیرا مال فکری قبل از اینکه به وجود آورده بشه اصلا وجودی ندارد تا بخواد از کسی به کسی منتقل بشه در حقیقت این مخترح هست که با تلاش خودش میاد این فکر را به وجود میاره و تولید میکنه و باعث میشه که مثلا ملک او بشود در حالی که اسباب انتقال ملکیت مال جایی است که یک شیی ملکیتی از قبل داشته و بخواد منتقل به فرد دیگری بشود خب در رابطه با اسباب قانونی احراز ملکیت اموال فکری در قوانین ما سه چیز به عنوان احراز ملکت اموال گفته شده عقود عغذه به شفعه و عرث که اینها یکی یکی باید مورد بررسی قرار بگیره اولین امر تعهد است که به سبب تعهد و زمانت طرف مقابل مالک ذمه متعهد می شود خب تعهد همون یا زمانت الزامات خارج از قرارداد رو بهش گفتند این همون الزامات غیر قراردادی است که در صورت محقق شدن باعث می شود که ذمه متعهد مشغول بشود نسبت به متعهد له و متعهد له مالک ذمه متعهد می شود مثلا اگر کسی به کسی خسارتی وارد کرد زربه ای زد به ناحق این ذمه مشغول میشه و اون آقای خسارت دیده مالک ذمه متعهد له میشه و تا این فرد خسارت زننده به تعهد خودش عمل نکند بله این ذمه او در ملکیت اون خسارت دیده هست و باقی است خب حالا که میگیم تعهد از اسباب تملک است معناش این است که تعهد سبب ایجاد ملکیت ذمه متعهد نسبت به له میشه اینجا دیگه ایجاد ملکیت نسبت به مال نیست نسبت به ذمه است یعنی او مالک محافظ زمه این خسارت زننده می شود حالا آیا می توانیم تعهد رو سبب احراز ملکیت مالک فکری بگیریم نسبت به اون کسی که این فکر را تولید کرده و این اختراع را انجام داده و این کشف رو به دست آورده است ظاهرا خیر تعهد در اینجا معنا ندارد چرا مالکیت فکری قبلا ثابت شد از نظر اقلای مال حساب می شود ذمه دیگری برای انسان نیست تعهد اون است که زمه یک نفر نسبت به فرد دیگر مشغول می شود و او مالک زمه این می شود به خلاف مالکیت معنوی و فکری که موضوع خود اموال فکری است اما در تعهد موضوع ذمه متعهد است پس منابر این این نمی تونه جزء اسبابی باشد که باعث احراز ملکیت اموال فکری بشود سبب دوم رو که به عنوان یک از اسباب ایجاد ملکیت گفتن احیای اراضی موات منظور از احیا اینی که اراضی که موات و تصرف اونا در همه مباحث کسی تصرف در او بکنه و عملی روی او انجام بده که باعث آباد کردن او بشود حالا یا زراعت بکنه یا درختکاری یا ساختمانی بسازه یا به نهوی مورد استفاده قرار بدهد حالا تفریگاه بکند و به هر وسیله چیزی میخواد اتو استکشاف بکنه از زمین در حد مورد استفاده و بهره برداری قرار بگیره و ارفن بگن اینجا رو آباد کرد داره آباد میکنه منظور از اراضی و زمینهای موات اون که با وضعیت فعلی قابل استفاده نیست هیچ اثری از شیء مفید در او به وجود نیامده و ملک کسی هم نیست این میگن زم... زمین های موات به خلاف زمین های باعر زمین های که قبلا آباد بود یا ملک کسی بوده طرف ول کرده رفته یا دست از امران و آبادی برداشته این های میگن باعر در مقابل دائر اما زمین موات در مقابل زمین مهیات هست زمین شده، یعنی زمینی که هیچ نوع فعلی سازندگی رو انجام نگرفته است خب حالا آیا احیاء اراضی موات قابل تطبیق است بر اموال فکری ظاهرا نه احیاء موات هم باعث احراز ملکت اموال فکری نمیتونه قرار بگیره چرا موضوع احیاء اراضی مواته و مباهه و زمینی که موات است خب کسی اگر احیا بکند باعث میشه اون زمین ملک برای احیا کننده باشد من احیا ارزن بله کسی زمین رو احیا بکند مالک اون زمین می شود فهیا له در حالی که موضوع مالکیت فکری مال فکری است و مال فکری اصلا شی نیست که در زمینی باشد که به ملک کسی در بیاید مگر اینکه کسی بگوید نفس انسان ذهن انسان به مسابه زمین مبات است و فردی که مخترع است و مبتکر است در نفس خود چیزی رو به وجود آورده و تأسیس کرده و نصب کرده و اختراع کرده که قبلا نبود وجود نداشت و خود او با تلاش فکری با پیگیری های ذهنی و خارجی به یک فکر نو رسید پس این آمده احیا کرده نفسش را بنابراین بگیم این ادله احیای عراضی مواد شامل او می شود ولی ظاهرا این درست نیست اولاً معلوم نیست این من احیا ارزن فهی شامل نفس هم بشود به حسب ظاهر ولی او با دید معرفتی انسان نگاه بکنه قابل تطبیق است که هر کسی در اندیشه و ذهن و قلب و خودش هر روزی را به وجود بیاورد چه از نظر فکری چه از نظر اعتقادی او مالک اوست و او متعلق به اوست و او مسئول نسبت به او و بازخاص می شود و خداش و اقاب بر او داده می شود اولا آیا این روایات ما که در مورد ارث بحث می شامل چنین مواردی هم می شود یا نه این هنوز اول کلام است که خلاف ظاهر عدله است که در مسائل فقهی آمده این اراضی اصطلاح خاریجو میگن ثانیا این روایت میگه اگر زمین رو احیا کردیم ملک تو می شود اما اگر اینطور نمیشه در باب نفس و اگر شما فکری رو و عقیده رو به وجود آوردی مالک نفس خودت میشوی انسان مالک نفس خودش هست چه چیزی رو در او پدید بیاورد چه نیاورد انسان مالک نفس خودش هست به تملیک الله تبارک و تعالی مالک اصلی خداست مالک حقیقی خداست ولی همین امور آریهی که به دست ما سپرده شده و ما مالک هستیم نسبت به اینها خب این متوقف بر این نیست که در نفس ما چیزی به وجود بیاد احیا بکنیم ابتکاری کنیم خلاقیتی به خرج بدیم و اختراعی داشته باشیم نه لذا بر مسئله مالکیت فکری اصلا قابل انتباغ نیست میریم دنبال سبب سوم که عبارت بود از حیازت اشیاء مباه که اینم سبب ملکیت می شود خب بیاییم این الفاظ رو بررسی بکنیم که مباهات چی یعنی و هیازت یعنی چی مباهات به اموری میگن که به اشیاءی میگن که ملک اشخاص نمی باشد و تمام افراد مردم به سویه حق دارن، اینها رو تملک کنن یا از اینها استفاده بکنند لذا دو تا ویژگی در مباهات هست اول این به هیچ متعلق نیست، مالک ندارد سانیان، وسیله افراد قابل تملک خصوصی است افراد می اون رو به ملک خودشون در بیاورند. نور میگن مباهات. البته مباهات امروزه خیلی محدود شدند و تملک این اموال خیلی سخت است به طوری که می شود گفت که اصلا مباهات یا به دست آوردنش یا ناممکن است یا لاغر خیلی سخت است یعنی وابسته به یک شرائطی است که باید مجوز قانونی به کسی بدهند و دولت ها مانع می شوند از اینکه افراد عادی در امور که مالک ندارن نقابل تملکن تصرف کنند و به هر نهوی بر اون سلطه پیدا بکنند ازا به حسب مصداقی الان مورد کم پیدا می مباهات رضا الان همه جا رو دولت ها، حکومت و نظام ها دست گذاشتند و حریم قائل شدند و خلاصه اینطور نیست که افراد آزاد باشند هر که هر کار بخواد بکند، بتواند بکند هر جا رو بخواد بگیره، بر هر جا بخواد مسلط بشود و به عنوان اینکه این مالک ندارد و بر منم قابل استفاده است این اشیاء مباه منظور از حیازت این است که کسی چنگ بر چیزی بیاندازد تصرف بکند در اختیار خود بگیرد حد و حدود برای شیءی قرار دهد که دیگران نتونن وارد این حریم بشوند ولو عملیات خاصی رو این شی انجام نداده است و این رو تبدیل به مالش نکرده است تأسیسی نداشته چیز خاص رو ایجاد نکرده نه صرف اینکه تصرف میکند دست روش میذاره و حد براش قائل میشود و او رو اختصاص به خودش میدهد خب حیازت به روش های مختلفی قابل تحقق مثلا کسی هیزوم های خشک بیابان رو جمع کند ها و چوبهای اضافی ها رو بره بچینه و جمع بکنه. خلاصه حیازت تصرف است یعنی دستش رو چیزی بذاره یا وسایل تصرف و استیلا بر ای رو فراهم بکنه. آن، اینو میگن هیازت هیازت دارای دو تا رکن است، دو تا پایه است. یک اینکه که تصرف بکنه در چیزی ید خودشو بر چیزی بذاره استیلای بر ای پیدا کنه که بتونه تصرف در او بکنه یا انتفاع ببره یا نه وسائل تصرف و استیلای خودش بر شیعی را فراهم بکنه که استیلا بر شی پیدا بکنه و عملا نشان بدهد و ابراز کند و اذکار کند و بفهماند که این شی مال من است مقصود من است و در اختیار من بناس قرار بگیرد این رو پایه مادی حیازت است پایه معنویش بیشین که قصد تملک داشته باشه حالا یا خود کسی که میخواد حیازت بکنه یا کسی از طرف حیازت کننده معمور بشه که بروی جایی رو تصرف بکنه چنگ بیاندازه او رو به دست بیاره و در اختیار فرد آمر و مولای خودش قرار بده موکل خودش قرار بده این قصد تملک باید داشته باشد و به قصد تملک جایی را تصرف کند سلطه پیدا کند و بدون قصد تملک نباشید خب حیازت فقط که منشأ ملکیت میشه مربوط به اموال مباه هست که چیز را برای انسان مباه کرده باشند مثلا آدم حتی مهمانی هم میرود خب میوه غذا چای شربت و سایر پذیرهای مختلفی میذارن خب و رو این مالک دارد اما وقتی در اختیار انسان قرار میدهد انسان میتونه در این تصرف بکند ولی اگر شما میوه رو از ظرفی برداشتید دیگه این میشود که استفاده کنید که استفاده کنید ملک شما میشود و با تصرف شما سلطه شما و در اختیار گرفتنیتون که میخواهید مصرف بکنید از تحت اختیار دیگران خارج میشود در حقیقت اباه تصرف را هم میتوان مصداق ضعیفی از همین حیازت به کار برد و مثال زد خب حیازت مباهات گفتن سبب تملیک است و تملک آیا ببینیم اموال فکری از باب حیازت مباهات هستند که موجب ملکیت اون شی برای پدید آورندش بشوند در اینجا دو تا سوال مطرح است یک آیا اموال فکری مال مباه تلقی می شوند؟ جزو مباهات حساب می و دو آیا مباهات فقط محصوره به هایی است که در کتب حقوقی ما یا فقهی ما آمده مثل اراضی مواد، آبهای مباه، معادن، حیوانات، اشیاء گم شده اشیاء زیر زمین دفن شده حیواناتی که مورد شکار میتونن قرار بگیرند، یا خیر اعم است اینها مستاغهای منحسر به فرد نیستند در رابطه با سؤال اول که آیا انبال فکری، اینها مال موباه حساب میشن تا بتونن مورد حیازت قرار بگیرند یا نه دو جور می شود گفت دو دیدگاه رو می شود مطرح کرد یکی اینکه میگیم اموال فکری چون امور جدیدی هستند و اقتضای ادمی دارند پیش از اینکه به ملکیت کسی در بیان مال مباه تلقی نمیشوند ها مباهات اون اموال موجودی میان که بدون مالکند که با تحقق حیازت به ملک شخص در میان اموال فکری گفتن وقتی که ابراز میشود به وجود میان و تا وقتی که در محدوده ذهن و اندیشه انسان هستند این رو نمیتونیم مال مباه حساب کنیم و این اصلا مال حساب نمیشود به نظر میرسه این دیدگاه اول تام نیست چرا به خاطر اینکه منظور از مال مباه چیزی است که در خارج هست، مالیت دارد ولی به ملکیتی کسی در نیامده یعنی بر اساس فقه و هو اسلامی و خیلی از کشورها و مذاهب دیگر بین مالیت و ملکیت فرق است چه بسیار اشیایی که مالیت دارند و ملکیت ندارند مالیت یعنی ارزش داشتن ملکیت یعنی تحت تصرف و بفرد، اختصاص به فرد یا افراد خاص یا نهاد خاص داشتن اما از ملکیت حقیقی یا حقوقی خب یعنی وجود خارجی دارد ارزش هم دارد منتها مالکیت یا ممیلکیت موقعی برای سبب میکند کسی دست رو بگذارد سلطه او داشته باشد در رابطه با اموال فکری و معنوی نمی شود گفت که اینها مال مباهند صرف هم به وجود نیامدن اصلا مال نیستند، معدومند، هیچ نیستند. ها، اصلا هیچ نیستند. بعد از اینکه اختراع شدند و به وجود آمدند، خب الان بحث سر این است که این شیء موجود آیا مال موباه حساب میشود یا نه. این که بگیم اموال فکری با ابراز و اظهار تازه مال میشوند اینجا اشکال داره لازم نیست کسی که اختیار داره حتما او رو ابراز کنه تا بشه مال ولو اظهار رو ابراز نکنه ولو او رو نگوید یا در کتابی ننویسد او الان صاحب مال است اموال فکری مال اندیشه ای دارد فکری اختراعی دارد که دیگران ندارند از او هران واجد چیزیست که دیگران فاقد او هستند تخصصی دارد فرض کنید تخصصی دارد، هنری دارد فنی بلد است چیزی را به وجود آورده که دیگران به وجود نیوردن این ارزش مالی دارد و دیگران خبر دارند ولو این به زبان نگفتی یا کتاب را ننوشته باشه این که بگیم انبال فکری با اظهار و گفتن یا نوشتن و از اظهارات دیگر تازه میشوند مال نه اینو مقبول نداریم مال هست ارزش دارد ارزش داشتن اموال فکری به ابراز و اظهارش نیست ولو نکند ارزش دارد ولو نگفته است و کتابم ننوشته است ولی دیگران خبر دارن می که او چنین نوآوری دارد سانین برفرزم حالا بگیم مال بودنش متوقف برای اینکه که اظهار کند خب وقتی که این اظهار کرد تازه شد مال ولی این دیگه مال مباه نیست چون مالک داره خود این اختراع کننده او رو به وجود آورده هموال مباه اونی که نه تعلق و اختصاصی به هیچ کس ندارد رابطش با همه مساویه جنگل ها، بیابان رودها، ماهیها، پرندگان نمی‌دونم اشیاء ذخیره شده در زمین، دفینه ها اشیاء دونم اشیاء معادن و الاخر خب پس بنابراین، این که بگیم اینها مال مال مباهند آن بعد از اینکه ابراز شدند، هان اینها مال مباه حساب میشوند این قابل قبول نیست دیدگاه دوم در رابطه با اموال فکسی این است که چرا اینها مال مباحند ولو به عنوان نامی از اینها از قوانین چیزی به چش نمیخورد و اینا پیش از اینکه گفتن احراز ملکیتش بشود اموال مبای هستند که منافعش زیاده، همه میتونن ازش استفاده کنن. اما بعد از اینکه ملکیت محقق شد، تحت سریتره یک شخص خاصی قرار میگیره و دیگران نمیتونن دیگه استفاده رایگان بکنند. خب این دیدگاه دومم مشکل از پذیرفتنش. چرا؟ چون این آقایی میگن پیش از اینکه این, این انوال فکری مل که برای کسی واقع بشود افراد متعددی میتونن از رو استفاده کنند و موجب پیگرد قانونی هم نیست در حالی که ما گفتیم وقتی که چیزی توسط فردی ایجاد شد دیگه این بگیم مال موباست همه مجا میتونه ازش استفاده کنن حاضر اول و اینکه این که بگیم این مال ملک این آقا نیست حاضر اول و مثلا اصلا ثابت کنیم آیا ملک او حساب میشود یا نه این که بگیم که چی بگیم اشیاء. پیش از اینکه موضوع ملکیت قرار بگیرند ها. پیش از اینکه موضوع ملکیت قرار بگن یعنی چی یعنی پیش از اینکه ثبت بشود ملکیت اینها اینها اموال مباح حساب میشوند بعد از اینکه رسمی شد ثبت شد و سند صادر شد از طرف نظام دولت مراجع رسمی برای فردی اون موقع به ملکیت او میان این هم قابل قبول نیست به ملکیت دران نیامدن غیر از رسمی نشدنه چه بسا چیزی ملک کسی هست ولی هنوز سند رسمی به او نداده اند هنوز اسناد رسمی و او سندی صادر نکرده اند مثال بخوایم بزنیم مثل عقد عقد ازدواج اون محرمیتی است که بر اثر اجرای سیغه ایجاب و قبول بین زوجه و زوج واقع می شود بعدش میروند و در محضر ثبت می کنند اینکه در محضر ثبت نکردن معناش نیست که عقد ازدواج واقع نشده اینا محرم نیستند و زوج و زوجه حساب نمیشوند بله اصطلاحا میگن ازدواجشون رسمی نیست سبتی نیست سبت نشده نه اینکه نکاح اصلا واقع نشده چرا؟ از شرایط نکاح این نیست که تو محضر باشه نه همین که طرف همدیگر را بشناسن راضی باشن دختر اگر باکر است بنابر اینکه اذن پدر و یا جد لازمه در دختر باکره او رو داشته باشه عقد واقع میشود چه سبت بشود چه نشود نکاح واقع شده بعد این نکاحش میگن رسمی نیست قانونی نیست بله تو ثبت احوال مثلا نوشته نشده است مال هم همینطور مال بعد از سبت به ملکیت کسی در نمیاد او فقط رسمی میشود سند میدن یه کاغذ میدن که این آقا اخترا مربوط به شماست شما صاحب این اختراف هستی و ولو این کاغذ هم ندهند این فرد مختره صاحب و مالک اون اختراع، پس این که بگیم مال فکری مال موباه حساب می شود مادامی که هنوز ثبت نشده است این حرف حرف درستی نیست لذا نمی شه بگیم اموال فکری اموال موباه حساب می شود بعد از طریق حیازت موضوع ملکیت واقع میشه. حیازت یعنی چی؟ یعنی بره به سبت رسمی برسونه و تعیید بشود زهره اینو نمیگن حیازت حیازت همون عمل فکری و تلاش ذهنی و عمل خود مختره رو میگن که چیزی رو که موجود نبوده ایجاد کرده به وجود آورده حالا هنریز، فکریز، فکریست، قانونیست، هرچی پس بنابراین حیازت عبارت از سبت سند شدن نیست که بتونه مالکیت این شهر را احراز بکند به تعبیری قبل از تولید و اختراع اصلا مالی در کار نیست بعد از اختراع اصلا مباه نیست بلکه ملک مختره اصلا ملک مختره با سبت که ملکیت حاصل نمی شود با حیازت حیازت میگه که خود این آقا کرده پس هیازت را سبت میکنه دیگه ولی او رسمی هم نشده باشد. پس بنابراین این اینکه انوال فکری و مسادیق او با هیازت به ملکیت در می آیند خب به انواع و اشکال خاصی ممکنه جلوه بکند، تحقق پیدا بکند. هیازت رو در اینجا ما باید خود اختراع کردن و اون فعالیت ذهنی و عملی خود مخترع رو بگین حیازه است خب او چی حازت کرده چه چیزی را این فکر را این طرح را این برنامه را این اختراع را این اختراع تا قبل اینکه خلق بشود خب همه میتونستن به اون اساسی پیدا بکنند بعد از اینکه توسط فرد خاصی کشف شد می شود ملک او میشه شود تبیین احراز مالکیت اموال فکری به سبب حیازت دو در اینجا این اموال موبا خود اختراح حساب می شود حیازت ایجاد این فکر توسط فرد یا افراد خاص حساب می شود حالا آیا این هیازت اموال موبا سرق میکنه یا نه و منشأ ملکیت می شود یا نه اینشالله در جلسه بعد به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین و طاهرین